افثانه هایی از کاور دور ژاپن ترجمه اردشیر نیکپول ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افثانه سوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سما مهربان داستان خواب فروشی یوکیچی و موسوکه دوستای همراهی بودند یوکیچی جوونی شاد و خندون و تا اندازه هم سر بود اما موسوکه برعکس اون جدی و بسیار دوراندیش بود با همه اختلاف نظر و روحیه و اخلاقی که با همدیگه داشتن همدیگر را اونقدر دوست داشتند که هر وقتی که از اونها برای انجام کار با زرگانیش میخواست مسافرت بره، انتظار داشت که اون یکی دوست هم باش، همراه بشه. روزی اون دو دوست با هم مسافرت میکردند. هوا گرم بود و چون به جنگل رسیدن خوشحال شدند. تو اون در سایه درخت سنوبری دراز کشیدند تا گرمای هوا بشکنه و بعد از رفع خستگی راهشون رو ادامه بدند. یوکیچی بعد چند دقیقه به خواب عمیقی فرو رفت بسو که دوست خودش رو که به خواب رفته بود نگاه کردش و با خودش داشت فکر میکرد که چه راحت و آسوده اینجا تو آغوش طبیعت خوابیده انگار تو خونه خودش خوابه من نمتونم بخوابم خوابم میترسم دوست بیا چیزی از من بدزده اما بد نبود میتونستم کمی چشمو رو هم بذارم و یه چرتی بزنم آخه بدبختانه من بیرون خوابم نمی موسو موسوکه غرق این افکار بود که دید زنبوری از سوراخ چپ بینی دوستش بیرون اومد موسوکه با حیرت به زنبور نگاه کرد دید زنبور پرواز کرد و رفت سمت درخت سنوبری که تنها روی تختی سنگ بلندی رویده بود رفت سه بار دور درخت گشت و بعد برگشت و رفت تو سوراخ راست بینی یوکیچی و بعد ناپدید شد. موسو که هیچ وقت چنین چیز عجیب و شگفتنگیزی ندیده بود. یوکیچی حالا بیدار شد و نشست. گفت موسو که نمیدونی چه خواب عجیبی دیدم. باید اونو برای تو نقل کنم. خواب دیدم سنوبر بلندی روی تخت سنگی روییده. درست مثل سنوبری که اون بالاست روی تخت سنگ یه زنبوری دور تنه درخت میگشت و وزوز میکرد و میگفت تو باید زمین رو اینجا بکنی. باید زمین رو اینجا بکنی. منم شروع کردم به کندن زمین و کوزه بزرگی پر از سکه های زر زیر خاک پیدا کردم. سکه هایی که اونقدر بزرگ بود که مثل شروع جست توی این خواب، جایی دیگه ندیده بودم موسوکه در پاسخ دوستش گفت راستی که خواب عجیبیه من اگه جایی تو باشم میرم و زمین و همون اطراف درخت سنوبر میکندم اما دوستش گفت مگه عقل تو از دست دادی دلت میخواد من تو این هوایی گرم و سوزان به خاطر خواب ای که دیدم بریم اون بالا خودمو خسته کنم؟ نه، من این کارو نمیکنم. بهتره به راهمون ادامه بدیم و خودمون رو به موقع به شهر برسونیم. اما موسوکه گوشش به این حرفا بدهکار نبود. به دوست خودش گفت: "به غمونم خواب تو بی نیست. اگه تو نمیخوای دور و بر درخت سنو بر رو بکنی، من حاضرم این کارو بکنم. میدونی چه پیشنهادی دی می میخوام بهت کنم؟" خواب تو بیا به من بفروش یوکیچی قاه قاه قاه خندی گفت معامله بدیم هم نیست من تا به حال خواب نفروختم. خب چقدر میدی؟ موسو که گفت تو گفتی که اونجا یه کوزه بزرگ از سکه طلا بود من درست نمیدونم اما دوست تو راضی به ضرر و زیان تو نیستم تو خودت بگو به نظرت خواب چقدر میارزه دو دا دوست بعد از گفتگوی گویی کوتاه درباره قیمت خواب با هم توافق کردند موسوکه خواب دوستشو رو به سیصد سکه بزرگ طلا خرید یوکیچی خندید گفت من هیچ و همچی معامله پرسودی نکردم. این همه پول به خاطر یه خواب ساده اما حالا باید عجله کنیم و راه بیافتیم و الا دیر به بازار می رسیم. دو تا دوست با صدای بلند با هم گفتگو میکردند، چون فکر میکردن که اون را تنها اما نمیدونستن که کاچی و هریس و نزدیکی و پنهون شده و داره صحبت های اون دو رو میشنوه اون مثل اون دو تا دوست به طرف شهر داشت میرفت چون خسته شده بود تو هاشه جنگل نشسته بود و استراحت میکرد خواب بود که به صدای گفتگوی دو بازرگان بیدار شد و همه حرفای اون دوتا رو شنید. لبخندی از روی بدجنسی زدش با خود گفتش چه مردمای درست و با تقویی خرید و فروش خواب. خوشبختانه ما هم بلند بلندم حرف میزنن که من حالا میدونم گنج کجا پنهون شده. میرم اونو مفت به چنگ میارم. کاچی من هریس از رفتن به بازار چشم پوشی کرد و بدون معطلی از تخت سنگ بالا رفت و شروع کرد به کندن زمین در کنار ریشه سنوبر. کند و کند و کند تا به یه چیز سخت رسید. با احتیاط زیاد به کارش ادامه داد. سر انجام کوزه بزرگ و شکمبر اومده ای از زیر خاک بیرون اومد که پر از سکه های طلا بود. کچی هریس؟ کوزر رو شکست و سکه‌های زر رو که در کیسه بزرگی که همیشه همراش می آورد ریخت. بعد از رسیدن به شهر با اون پولها خونه بزرگی خرید و چون مردی توانگر زندگی کرد. اما سکه‌های طلا برای اون خوشبختی نیاوردند. اون بعد از مدتی نه تنها طلاهایی رو که پیدا کرده بود بلکه همه اون چرا که پیش از اون داشت از دست داد و به خاک سیاه نشست و به گدایی افتاد اما موسوکه بعد از اینکه که کارها توی شهر انجام داد از یوکیچی جدا شد و به جایی که خواب دیده بود برگشت وقتی دید که ریشه های سنوبر بیرون افتادن و شکسته های کوزه دوروبر درخت روی زمین ریخته فهمید چه ضرری کرده با نامدی و ناراحتی با خودش گفت یکی پیش دستی کرده گنج و از زیر خاک بیرون آورده و به حسرت شکسته های کوزه رو نگاه می کرد که ناگهان از تعجب سر جاش خشکش زد. چون روی یکی از شکسته های کوزه چشمش به این کلمه ها افتاد. اولی از هفته موسوکه با خودش گفت اولی از هفته معنیش اینه که شش کوزه دیگه هم زیر خاک وجود داره. بعد شروع کرد به کندن زمین. واقعا اون شش کوزه دیگه یکی بعد دیگری از زیر خاک بیرون آورد و همه اونا پر سکه های طلا بودن. بوسو که در شهر خونه بزرگی برای خودش ساخت و اون رو کوزه بزرگ نام داد. اون تا پایان زندگی خودش در رفاه و آسایش به سر برد. یو کیچی اغلب اوقات به دیدن موسوکه می رفت و معمولا به اون اینطور می گفت خب مسوکه حالت خوبه اومدم احوال خواب خودم و ازت بپرسم دو دوست دست به پشت همدیگه می زدن و می و موسوکه به بهترین شکل از دوست خودش پذیرایی می کرد عزیزان شنونده امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید